سخندانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخندانی تذکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام جلسه ششم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد وَعَلَىٰ آلِهِ تَيِّبِينَ الطاهرين الْمَأْسُومِينَ لاسيما بَقِيَّتِ الله في الْعَرَزِينَ اللهم انت السلام ومنك السلام و السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون و على المرسلین والحمد الحمد لله رب العالمین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 السلام علی الحسن و الحسین شباب احل الجنه اجمعین السلام علی بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد بن علي باقر علم نبیین السلام علی جعفر بن محمد الصادق السلام علی موسط جعفر کاذم السلام علی علي بن موسر الرضا السلام على محمد ابن علي, <تصفح> على, علي بن الجواد السلام على ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الهجت ابن الحسن القائم المحتدي عليك يا مولاي يا امير المؤمنين يا اول مظلوم قصب حقه يا علي ابن أبي طالب يا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و وتوسلنا و ترسالنا الله و قدمنا كبين يدي حاجاتنا <تصفيق> يا وجي الله اشفلنا اند الله قال الله تعالى في کتابه و نفس و ما فالحمها فجورها و تغواها قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها و از تدکیه نفس کنیم میگیم ما دلمون میخواد تدکیه نفس کنیم ما دلمون میخواد رشد و تعالی پیدا کنیم خیلی ما به صورت کلیگویی و حرفی برخورد نکنیم حل عملی چیه؟ مثلا فرض فرمایید گای بختا در بحثای تربیتی این ها مطرح میشه خیلی ها میگن که آقا ما دلمون خ... بچه هامونو خوب تربیت کنیم خب بسیار خوب. خوب تربیت چکار کنیم خوب تربیت کنیم یعنی چی؟ کدوم پدر کدوم مادر کدوم معلم دلسوز کدوم مدرسه ای که دلش برای شاگرداش می‌سوزه نمیخواد بچه هاشون خوب شن اما حل عملی چیه؟ آیا در دین ما که این همه جزئیات رو برای ما مطرح کردن و اینقدر رو تذکیه نفس حساسیت نشون دادن این راه عملی به ما نشون ندادن چرا؟ یک تو پرانتز ارزم کنم محبت رو خیلی به رخ ما کشیدن راه ایجاد محبت رو هم به ما گفتن که اجازه بدید این از فرداشت باشه ولی میخوام مقدمه بر اون بحث بگم ما اولین قدم دو کار احتیاج داریم نمیتونیم کنیم منهای این دوگام حرکت کنیم و پیش بریم این دوگام چیه؟ کار نظری کار عملی این دو اصل رو باز به صورت کلی الان دارم میگم اما میشکافم به صورت جزئیش هم عرض کنم. بذارید با یه مثال عرض کنم بنده میخواهم راننده بشم هیچ رانندگی بلد نیست دو تا کار احتیاج دارم یک بالاخره رانندگی چیه؟ اتومبیل کدومه؟ فرمانش کدومه؟ ترمزش کدومه؟ نمیدونم کلاج گازش کدومه؟ چیه؟ بالاخره باید این اطلاعات نظری میگم. خب حالا اگر این مربی من که میخواد منو راننده بار بیاره بیاد بگه که ای دنده است ای کلاج اینجوری باید دنده رو عوض کنی اینجوری باید گاز بدی اینجوری باید فرمون رو کنترل کنی این کافی است؟ یا باید تمرین عملی هم داشته باشه تمرین عملی میخواد به صورتی که منو میمشونه خودش هم بقیل من میشینه یک ترموز و یک کلاج هم خودش داره که کنترل میکنه منو. آروم آروم با من می حرکت کن حرکت کن به جایی میرسه میگه آقا دیگه شما برو میتونی آلا. حالا حالا میخوایی داری امتحانم بدی بروه امتحان بده ما در مسائل رشد انسانی یک مقدار مسائل نظری میخویم این مقدار مسائل نظری چی باشه؟ از کجا شروع کنیم؟ چه مقدار به چه صورت؟ من چهار تاشو به صورت ریز کرده میخوام مختصراً البته به اختیزای امشب بحث کنم انشاءالله عمری باشه ادامه میدیم. یک باور این معنا اطلاف پیدا کردن نسبت به این عصب و قبول اندیشه ای نسبت به این معنا که ما به کجا باید برسیم یعنی گای وقتا شما به یک انسان میگید که آجون چرا در سیر تکاملی گام بر نمی‌داری مشکلش اینه که او اصن قبول نداره که میتونه سیر تکاملی داشته باشه این باور نکرده خب این باور باور چیه نظریست دیگه اندیشه‌ای فکریه پس یک ما احتیاج داریم مطالعه بحث گفت و شنود نسبت به این امر که من میتونم به جاهایی برسم که از نظر تکامل و تعالی از فرشتن بالاتر بشن اینجا دو تا مشکل نظری ما داریم که هر دو مشکل در زمان ما خیلی مطرحه دومی باز در زمان ما بیشتر که من چون مواجه هم با گروه های گوناگون فکری و اندیشه ای ارزم کنم مبتلا به بوده یک برخی اصلا توجه به این مسائل ندارم اصلا تو ذهنشون این حرفا نیومده خب اول باید یه تلنگوری به ذهنش بزنی شب ماهرمان، ماه رمضان، شب جمعه، جلسات دینی یک خاصیتش باید این باشه این تکان در درون انسان ایجاد کنه که ما چی باید بشیم یعنی واقعا همینی که هستیم بسه خانه بشیم کافیه از خود راضی باشیم یا این نه من خیلی بهتر از این میتونم باشم اگر میتونم باشم اون کیه من کجا باید برسم یک مادری مال چند سال قبله به من زنگ زد فلانی پسر جوانش که شاگرد خود بنده بوده خیلی خوش استعداد و خوب و فعال گفت فلانی ایشون مشغول یک کارای اقتصادی شده انقدر غرق مسائل اقتصادی است که چک و سفته و مسائل این چنانی که دیگه حال یک صفحه قرآن خوندنم نداره ولی شما رو قبول داره من ازت میخوام باشی کمی حرف بزنی گفتم چاش زنگ زدم به این جوان واقعا دوستش داشتم چون جوان خوش استعداد با علاقه من امیدم داشتم که ان یه خدماتی بکنه گفتم فلانی میخوام شما رو ببینم اومد منزل ما مال چند سال قبل اومد منزل ما تا نشست از اونجایی که جوان خیلی خوش هم بود تا رفتم لوا کنم گفت میدونم میخوای چی بگی گفتم از ذهنت خوب دقت بفرما گفتم شما اول این نکته رو به من جواب بده فکر کن زندگی کردن خوبه یا بده اگر خوبه من قانعم اگر بده عوض کن من از اول از موزه یک قدرتمند واعظ مثلا بالادستی که منم همش برخوردی نمی‌کنه نخه من میگم ببینید فکر از زمان اگه خوبه به من بگو خوبه خب منم قانه بشم اگر خوب نیست بنده میگم خوب نیست دلیل منم گوش کن اگه قبول کردی خوب نیست عوض کن میدونی جواب چی داد خیلی عجیبه انسان به اینجا برسه گفت فلانی من وقت فکر کردنشو ندارم دقت میکنی در این خیلی مشکل ها. یعنی یه وقت میاد میگه من فکر کردم به این دلیل خوبه آدم دلیلشو گوش میکنه بعد میگه نه عزیز من اشتباه کرده این دلیل غلطه یا می‌بینی آقا به اندازه‌ی فهم خودش دلیل پیدا کرده آخه. خودام با دلیلش باش بحث میکنه اما این انسان میگه من وقت فکر کردن ندارم. خب این که دیگه خیلی بیچاره مثل چون تو مسائل مادی معمولاً اینجوری نیست. اما فرض کنید اگر بخوام یه همچین مثالی بزنم بگن آقا فلانی سه روز چهار روز غذا نمیخوره بیمار افتاده اونجا. بیان داشت حرف بزنی میان میگیم آقا جان چرا غذا نمیخوری میگه من وقت غذا خوردن ندارم خب اینو خودشو میکشه دیگه یا الان دو چهار یک آرزه جسمانی شده که طبیب باد مداواش کنه این انسان میخوابونن سرما بهش واسط میکنن میگن دیگه, دیگه اینجا رسیده دیگه نمیشه راهش کرد اما اگر کسی تو مقوله نیاز جسمی اش که آ واقعیت من احتیاج به غذا دارم شکم پرست بشم که تمام زندگی من بشکم پرستی نه در حد لازمی که من قضا لازم دارم از او بخوام اجتناب بکنم اما با کار من به جایی برسه فرض کنید بگم که من وقت قضا خوردنم ندارم کسی که میگه من وقت این که فکر کنم زندگیم همینه یا نه شبای است؟ یک رازش اینه من باور کنم لذا قدرشناسی قدردانی چرا در فرهنگ دینی ما روی فکر اینقدر ارزش قائل شدم؟ تفکر و ساعت افضل من عبادت سب این اصلا انقدر شیطون قویه انقدر شیطون قویه بیایم پناه به خدا ببریم سعی کنیم آقایون خانم ها این عمر به سرعت نکداری این گرمی و سردی روزگار تموم میشه ولی این واقعیت رو بپذیریم که یه وقتی به خودمون میاییم پنجا سال شست سال هفتاد سال عمرمون رفت چکار کردیم آخه اومده میگه آقا تفکر و ساعت افزلومن عبادت سب اینه سنه باشه من گاهی میشینم پنج ساعت فکر میکنم چه کار کنم پول بیشتری در بیارم حرام نیست از راه حلال انشاءالله نمیخواد کلا کسی هم بذاره ولی اینم فکره اما این فکری که تفکر و ساعت افزلومن عبادت سب اینه سنه اینه یا اینه که شب غدره و هر وقتی که برام امکانش هست سمبل شب قدره یعنی ببینید اگر حاجی در حالت احرام باید پا ورچین با احتیاط حرکت کنه یه دونه بود تم زیر پاش نشه یه دونه مو هم از بدنش نکنه یه پشرم رو بدنش نکشه یه حرف رکیکم به دیگری نگه درشتم با کسی سخن نگه تا چه برسه بقیه گناه ها یعنی خدا میگه فقط این دو روز سه روز یک, یک نصف روزی که در حال احرامی این کار بکن یا تمرین بقیه عمر هم قیاس کن با این نصف روز ببین اینجوری احتیاط میکنی یا نه و من این یک حالت این هنرپیشه ها یا اینایی که تاعت بازی میکنن دیدید نقش کسی رو میخواد بازی کنه الان نقش یک خائن درجه یک کره زمین میخواد بازی کنه، خیلی هنرمند باشه، چند قشنگ بازی میکنه، میگن واقعا خودش رو یک مثلا خائن درجه یک نشون داد. حالا نقش یک عابد زاهد با تقوا رو میخواد بازی کنه، اونقدر قشنگ نقش او رو بازی میکنه، میگه از این عابد دیگه ما سراغ نداریم. نکنه ما نصف روز احرام داریم نقش بازی میکنیم، تو بقیه عمرمون نیست. نقش بازی میکنیم به قدر شاخصش نشانشه نمونشه که بقیه ایام این حالت در ذهن ما ایجاد بشه آیا همینجور خوبه که دارم زندگی میکنم یا من میتونم برگردم این فکر آدمو عوض میکنه و چه زیباست انسان به خصوص در دل شب اونم مثل های جمعه یه گوشه خلوتی بین خود و خدای خودش این معنا رو ایجاد کنه که یک من میتونم بهتر بشم من انسانم خدا قدرت ها به من داده چطور من دارم قانه میشم در این حد و در این اگر بنده از نظر جسمی که سالت پیدا کردم چرا میرم پیش پزشک میگم آقای پزشک سرم درد گرفته چرا میرم میگه یعنی من سرم باید بهتر از این باشه نباید درد بگیره شما تشخیص میدی بگو چکار کنم که درد نگیره خب یه نصف شب جمعه با خدای خودم این حرفو بزنم چرا من میل دارم دروغ بگم؟ چرا میل دارم حسودی کنم؟ چرا میل دارم غیبت کنم؟ چرا میل دارم چنین؟ چرا چرا چرا اصلا میتونم بهتر این گاهی باو من سلام درد میکنه،, و من میکنه به من میگن آقا چرا به مراجع مراجعه نمکنی؟ میگم میگم غیر از اینم میشه باشه مگه. مگه غیر از اینم میشه باشی؟ این فقط سراغ مداوا نمیره. پس یک مشکل اینه که ما حال و حوصله و وقت برای بررسی کردنش رو به اختیزای زندگی ای که برای خودمون درست کردیم نداریم این یک مشکل زمان ماست زمانی ما مؤمنیم زمانی ما متدینیم این علی که امشب شب غریبه شه و ما ازادار او هستیم عشق به او میورزیم دم از او میزنیم این علی به من و شما میگه مؤمن نیست مگر آن که شبان روزش رو سه قسمت کن به خدا علی خیلی مزلوم. این اینم یکی از ا یکی از دوستان خود ما می گفت در یکی از کشورهای اروپایی میگفت تحصیل میکردم تو دانشگاه یه رو استاد ما خیلی به اسلام بدبین بد بود خیلی بدبین بود من دیدم خیلی دیگه داره لجوازی میکنه نحج البلاغه ترجمه شده یه به انگلیسی رو دادم به این استاد گفتن این شما بخونید گفت که بعد از یه چندی یه روز من توی حیات دانشکده بودم این تو اتاقش استاده بود از پشت پنجره منو اشاره کرد تو گفت من رفتم تو تا بهش رسیدم شروع کرد به من تندی کردن من فکر کردم که این نتونسته کتاب رو بفهمه بعد برداشت کرده لجش گرفته خیلی نگران شدم وقتی تندیاش تموم شد گفت شما واقعا یه همچه شخصیت هایی داری تو دینتون من با این کتاب حالا فهمیدم که کیه. با یه کتاب نحجر بلاغه به انگلیسی ترجمه شده حالا چه مقداریست ممکنه میگه من داد سر شما میکشم که شما با داشتن یه علی ابن عبی طالب چرا اینجوری هستید شما باید فعی جامعتون بهتر از این باشه خب ببینید یک مشکل ما اینه که ما وقت نمیذاریم این علی داره میگه اگه منو قبول دارید شبان روستون آقاییم باید سه قسمت بکنید خانم ما سه قسمت یک. برای کار و کوشش و تلاش. ما تو اسلام تنبلی نداریم، ما تو اسلام سربار دیگران شدن نداریم، ما تو اسلام لوسوازی نداریم، انسان باید فعال باشه، باید کوشا باشه دو، خوراک استراحت، ما در اسلام روحانیت مسیحیت رو نداریم، ما در اسلام دست از کار و کوشش کشیدن و توی یک دیر و یک سومعی پناهنده شدن ما تو اسلام نداریم بنابراین شما باید خوراک و شما باید استراحت داشته باشید. طب بنده اگر فرض بفرمایید امشب که میخوام بیام مسئول عمر شما آقایون و خانم ها که این مقدار وقت رو اینجا صرف میکنید به مگو بکنم اینقدر خسته باشم مثلا تمرکز مرضی پیدا نکنم خب من خیانت کردم در حق شما. و اندازه لازم بود شرایط رو در خودم ایجاد کنم. پس دو یک قسمت خواب و خوراک و استراحتتون. سه یک قسمت از شبانه روز برای عبادت حالا اینجا دقت بکنیم این سفارش علیه آیا عبادت فقط نماز خوندن یعنی ما یه قسمت از سه قسمت شبان روز رو سه تا هشت ساعت چهار ساعت هشت ساعت رو بگذارم نماز بخونم اینو نفرمودم هشت ساعت رو بگذارم فقط قرآن بخونم اینو نگفتن عبادت یه عبادت واجب داریم که انشالله تو بحث عملی میگم امشان تموم نمیشه میدیم. یک عبادت واجب داریم که هیچ کوتاهی در او پذیرفته نیست. بقیش میشه عبادت مستحب. عبادت مستحب به اقتضای شرایط زمان و مکان فرق میکن یعنی اگر شما یک آقازاده ای تو خونهتون دارید نیاز به کمک فکری شما داره، نیاز به وقت شما داره، نیاز به ارشاد شما داره. میگی نیا سراغم ختم قرآنم تموم نشده علی راضیه این عبادت نیست این اینه بشینی با این بچه صحبت کنی اشکالشو بپرسی خودت نمیتونی جواب بدی داشو بگیری بری سراغ دیگران وقت بذاری چطور اگر این آقازاده شما خدایی نکرده که سالت جسمی پیدا کرد شما حاضری ببری اروپا مداواش کنی حاضری خدایی نکرده خونتو رو بفرشی خرجش بکنی نمیکنی این کارو؟ لا اقل این مقدار وقت برای بچهتون بگذارید که ببرید فیژ چهار نفر بلدن بپرسید از چهار نفر بلدان چا تا که این عبادتته برای چین کاران میکنید خدایان میخوام فرزندم تو راه تو قرار بگیره. پس یک مشکل وقت نمیگذاریم البته من یه بار یادم توی جمعی اینجا یا جای دیگه بود این حدیث رو مطرح کردن یه عددهه با یک تصورور روحی به من گفتن کلانی واقعا با هشت ساعت زندگی ما نمیگذره. ما در یه شرایط اقتصادی عادی قرار گرفتیم گاهی ما لازم 12 ساعت 14 ساعت کار کنیم بله رو قبول دارم شرایط که استثنایی بحث دیگری است مثل استراحت اگر کسی روزه را باید بگیرد بیمار نمیتونه خب بخوره اون بحث دیگری است اینجاها یک بحث دیگه پیش میاد یه وظیفه اجتماعی است که بحث دیگری است یه وظیفه شخصی فردیست در وظیفه شخصی یک نمیشه بعضی اضافه ها رو زد یعنی اگر واقعا بنده که لازم 14 ساعت کار کنم تا زندگیم بگذره نمیشه 12 ساعت کنم بعضی اضافاتو بزنم دو رو بذارم برای تربیتی دینی خانوادم میشه یا نمیشه؟ بین خود و خدا اگر میشه چرا نمی کنی؟ حالا حتما باید فرشما نایین باشه؟ حتما باید کاشان باشه؟ نمیشه حالا فرش ساده بشه؟ اگر اینجور جاهاست نه اینه به حسابه؟ ضرورت نگذارید این بیان پیغمبر من و شماست که فرمود مامن بیتن لی سفیه شیعون من الهکمه الا کان خرابا پیغمبر میگه خانه ای که در او برنامه های حکیمانه پرورش بچه ها تربیت دینی وجود نداره از نظر من پیغمبری خرابه است خونه سی خونه نیست خب بیایم یه مقداری در این ایام شبغت آقا خیلی وقت آدم میپرسه می‌خوایم رشد کنیم می‌خوایم تعالی کنیم چه مکنیم قدم برداریم حالا این جنبای عملیشه ولی من عمدن توی این قسمت نظری عرض کردم یک مشکلی که در زمان ما هست وقت فکر کردن نداریم بیاییم وقت فکر کردن درست کنیم دو این مشکل هم در زمان ما خیلی یکی مخصوصا تو جوان ترها پیش اومده مطرح میکنن میگن آقا من یه نفر خوب بشم جامعه رو چیکار کنم ما با جامعه ای که اکثریت دروغ میگن اکثریت کلاکن اکثریت رشوه میگیرن اکثریت بیانصافی میکنن اکثریت قشه در معامله دارن ما کار کنیم یا راست یا دروغ اگر دروغ است اکثریت بد نیستن اون کی فرض اگر راست اکثریت بدن من با این فرض میگم آقا ما دو تا وزیفه داریم یه وظیفه فردی داریم یه وظیفه اجتماعی اگر در وظیفه اجتماعی اون نتیجه نهایی رو نگرفتید یا نمیتوانید بگیری وظیفه فردی رو باید راها کرد یا باید وظیفه فردی رو انجام داد یعنی با مثال بگم بنده وظیفه فردیم اینه که نمازامو رو بخورم روزه‌م رو بگیرم اگر توی جامعه‌ای بودم که همه نماز می‌خونن همه روزه می‌گیرن به چه ایدئال خیلی هم عالی لذت می‌بره اما اگر من تو توی ای بودم همه روزه میخورن همه بحث دین رو که نماز نمیخونن من تکلیفم چیه؟ من نماز خودم بخونم من روزه خودم بگیرم من تو محدوده خانواده خودم لاعقل فرزندم همسرم اطرافیان من شما کار خودتون انجام بدید اینجا گاهی برخی جوونها یه دلخوریه یه دلزدیگیه از بعضی مسائل اجتماعی پیدا میکنم من حقم بهشون میدم خیلی خب دل زده شدید مثلا فرض کنید. دو تا دوست بودن هم دوره بودن هم کلاس بودن با همدیگه دم از مثلا مسائل اصلاح اجتماعی می زدن. حالا یکی اومد یه امکانات گیر اومد همین هم دوره می بینه این هم دور رو حرفهایی که میزد خلافش دا عمل میکنه. میخواب عزیزم من ما که با هم بودیم؟ بنا بود دلمون برای دیگران به بنا بنابود کاری برای دیگران بکنیم خب اگر برسر شما که همکلاس من بودی دیدید من الان یه شرایطی به دستم اومد من دروغ میگم شما چرا دروغ میگی شما دروغ نگو من بدم شما در حد وظیفه فردی خودت کارتو بکن اینم یکی از های شیطان ها شیطان میاد اینجا اینجوری ما رو گول میزنه آقا جامعه چه خب باشه جامعه باشه شما چی؟ کار خودتو نمیگم تو اجتماع کار نکنم اول خودت رو غوی کن خودت رو که قوی کردی بعد میدونی ما چی کار کنی؟ به اندازه که میتونی بیا تو جامعه و اینم قاطعانه به شما میگم کسی که تا خودشون نساخته باشه نمیتونه تو جامعه موثر باشه یکی از مشکلات اینه امسال بنده میخوایم دم از دین بزنیم تأثیر نمیکنه چرا؟ چون من خودم رو نساختم بعضی عزیزان بودن چهار روز قبل تو مسجد دانشگاه شریف این رو گفتم گفتم محیط محیط دانشگاهی شد شما هم تیپ دانشدو هستید و این مسائل داری زهن شما مطرحه که آیا این مدینه پازله اسلامی که ما امید میبریم که چی شد چه کار بکنیم گفتم ببینی از جمله کسانی که در رکاب علی ابن ابی طالب بوده و در جنگ سفین شهید شده کیه عوی سقرانی عوی سقرانی چجور زندگی کرد که تونست انقدر باشه؟ اویس علرانی کسی است که عاشق پیغمبره تمام وجود اویس رو اشق به پیغمبر گرفته روزا میاد سر راه مکه مدینه که به قرن میرسه میشینه یه پیچی بیاد بگه پیغمبر چه خبر حالش چطوره اینقدر عاشق اما اینقدر متعبد اینقدر متشره وقتی مادرش مسلمونم نیست به پیغمبر ایمان نداره به پسرش میگه راضی نیستم بری مدینه پیش پیغمبر این انسان چون دینش بهش گفته آقا اطاعت امر مادر واجبه پیغمبر سفارش کرده حرف مادر تو گوش کن میگه من اگه مادرمو بذارم پاشم برم مدینه خلاف شر کردم دلمو اینجا چه میکنه؟ زیر پا میذاره شعر و میگیره این انسان به اون مقام میرسه که علی میگه من اینجور آدم ها میخوام لذا وقتی مادرش مرد حالا دیگه محدودیت نداشت پاشد اومد مدینه زمانی رسید مدینه که پیغمبر از دنیا رفته بود زمان امیر بود به امیر ملحق شد یعنی خوب این نکتر رو نایست بکنید تو بحث تذکیه نفس خدا میدونه دارم به خودم میگم کلا سر خودم نذارم دلم برای جامعه میسوزد اصلاح اجتماعی دست مردم را بگیریم من رو خودم چقدر کار میکنم اگه از خودم شروع نکنم، حق نه. ببینید نمیگم دل برای مردم ما. باید بسوزونیم باید کار کنیم این شعر معروف بنی آدم اعضای یک <تصفيق> <يک> پیکرم که <تصفيق> در آفرینش زیگ گوهرن چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از لحنت دیگران بیغمی نشاید که نامن نهند آدمی حدیث پیغمبره این حدیث سعدی برداشته ترجمه کرده و انقدر تو دنیا این شعر زیبا جلوه کرده که به اطراف دیوار سازمان ملل هکش کردن این شعر سعدی رو بله انقدر زیبا اینو پیغمبر میگه تو که مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامن اینو من توجه دارم اما میگم آقا هر چیزی حسابی داره من تا در خودسازیم کار نکنم نمیشه دیگران سازی من مؤثر واقع بشه رتب خورده من از رتب کی کند پیغمبر و اون عظمت بچه رو آوردن پیشش یا رسول اللهی خورما زیاد میخوره اذیتش میکنه حرف ما رو بوش نمیکنه شما به این بچه بگید خورما کمتر بخوره حضرت فرمود ببرید فردا بیارید فردا آوردن فردا که آوردن حضرت فرمودن که مثلا پسر جان خورما کمتر بخور یا رسول الله چرا دیروز نفرمودید فرمود دیروز من خودم خرما خورده بودم یعنی اثر واسعی داره آخه خرما خورده بودم یا یعنی این بچه دیده بود من خرما خوردم. این پیغمبر که جهاد دارد با دشمنان خودش هست علی هست حمزه هست امار یاسر هست ایست چهره های و سلمان و چهره های برجسته اطراف پیغمبر جهاد با دشمن داشتن دیگه مگه نداشتن اما این پیغمبر میگه جهاد اکبر یادتون نره خوب دقیقه تو فرماید یعنی چی؟ در روح گفت پیغمبر نعوذ بالله مبالغه کرده یا میخواد دومای معنی رو بفهمونه؟ یارا یا رسول الله ما با این دشمنا ها جنگیدیم نه خیر سخت تر دشمن نفس خودتونه با او باید بجنگی. یعنی کسی که در جهاد اکبر که با نفس خود مبارزه کر موفق نشود نمیتواند در جهاد با دیگران که جهاد اسقره موفق بشه اول با اینجا رو ما موفق بشیم خدای رحمت کند مرحوم حاج میرزلی آقای شیرازی رو یکی از بزرگان بوده بنده ندیده بودن ولی استادای ما که ایشان دیده بودند برای نقل کردن گفتن اخلاق ایشون اونقدر اثر داشت که مرحوم آیت الله بروجردی سال ده شب دعوت میکرد در قم فقط برای علما و روحانیون کسی دیگر به شرکت نداشت و به ایشون گفته بود موعظه خاص این صنف رو برای اینها شدیداً بی ملاحظه بکن خود آی بروچدی هم میشست میگن اکثر زمان صحبت مرحوم حاج میرزلی آقا خود مرحوم آی بروچدی اول تا آخرش گریه می‌کرد. یه سال دو شب یا سه شب ایشون صحبت کرد ایشون شیرازی الاصل بود ساکن اصفهان بود. صحبتشون که سه شب یا دو شب تموم شد هنوز هفت هشتم دیگه باید بیاد دیدن شب بعد حاج میظلی آقا نیومد رو گرفتن چی شد آقایشون نیومد جلسه گفتن رفت اصفهان مرحومای گرجی کسی رو فرستاد برید اصفهان سراغش رفتن اصفهان خدمتشون آقا چی شد چون من نیومدی گفتن سلام منو باهای گرجی برسونید چون بحث اخلاق تعارف نمیکنم رک میگم من شب دوم سوم که ترید از من بالا منبر بودن چشمم افتاد که عجب آی برود جردی رئیس و زعیم حوزه علما روحانیون مدرسین طلاب همه بزرگان علمی دین ما پای منبر من گوشند و می میریزند یک کمی دور برداشتم. قرور در من ایجاد شد ما کسی شدیم و ای همه دارن میدن. از منبر که اومدم پایین با خودم خلوت کردم تو حرم حضرت ما سلام الله علیه گفتم فلانی منبری که اثرش این خودت مغرور میشی امید داری توی اثر کنه این منبر سازنده نیست خود تو گل نزن برو برو فعلا خود تو اصلاح کن هر وقت اصلاح شدی برو برای مردم حرف بزن لذا من فعلا بنا دارم منبر ندم تا زمانی که احساس کردم بر آن فرق نمیکنه خب اون موقع بحث دیگریه وقت خب این انسان معلومه که حرفش اثر رو میکنه می دیگه نالیدن محجوران سوز دیگری دارد آهی که زدل خیزد بر دل اثری دارد به خدا قسم اون سخنی که از حنجره است اون سخنی که از دل مصممه متوجه میشه فرقش رو برای اینکه سخن از دل برخیزه با دل رو مرتبط کرد که اون بحث محبت دل بستگی رو انشالله برداشم خواهم گفت دل بسته شد سخن از دل برمیخیزه پس یک از جهت نظری ما باور کنیم این معنا رو ما به کجا میتونیم برسیم یک مشغله گرفتاری کار زندگی نه خیلی آقا از این گذشته آقا ما این حرفا رو بی اثر ندونیم یه مقدار قائل به خیر بشیم قائل به برکت بشیم قائل به امدادهای غیبی بشیم ای علی من و شماست نهجل ولاغست بخونم آقا والله که سیغه قسمه باور دارم والله باور دارم که میگم من اصلحه بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس، و من عمل لدین الله امر دنیا ای خدا، و من عمل لدینه کسی که برای دینش لخواد کار کنه الله امر دنیا یعنی شما اگه چهارده ساعت لازمه کار کنی صادقانه برای خدا دو ساعت رو بزن خدا برکت و در اون دوازده ساعت دیگه قرار میده ما معتقدیم اینا رو متاسفانه یه مقداری روشنفک معاوی ها یه قداست های دینی باورهای معنوی ارتباطات معنوی رو گرفت از ما و شکلی از تبلیغات شکلی از نگارش ها اینا حساب داشته من با اطلاع خدمت رو نرز میکنم یه دست هایی در کار شد این غدا سطح را بگیرد در دنیای تفکر دینی ما وقتی گرفت اون وقت بنده متکی میشم به کار چارده ساعت خودم یکی از دوستان خود من برام نقل کرد یه کار مفیدی داشتم که هم زندگیم با این کار میگذشت هم واقعا مفید برای دیگران بود لذا خوشحالم بودم خدا رو شکر حمداله زندگی ما از این کانال میگذره کاری هم هست که مفید برای بود. گفت خانومام رو دیگران مثل تحریک کردن چی شد یه مدتی ایشون شروع کرد به ما هی مثلا اعتراض کردن آ شما استعداد بیشتر ادینه توان بیشتر ادینه فلانی رو ببین فلانی رو ببین مگه نمیتونی انقدر ما دچار مشکل خانوادگی شدیم که من اومدم یه مقدار از وقت ما اختصاص دادم به یه کاری که از نظر درآمدی برایم بیشتر بشه این دوست خود من الان تهرانه. گاهی تو همین جلسه‌ها هم شرکت می‌کنه. این شب هم نمیبینم شایدم باشن. ایشون، شاید هم باشه. ایشون میگفت من یه مقدار از وقتم رو گذاشتم اما این وقت گذاشتن من باعث شد یه محرومیت های معنوی که بعضی از ما در براشون پیش بیاد. اونا محروم شدن. اما من دیگه گفتم خداش کار کنه زن و بچه ای من بریدن اصرار میکنن من رفتم دنبال این کار. خب آقا ما رفتیم. خب یه درآمد خوبی از این کانالم برامون پیش اومد. قسم می‌خورد به من می فلانی خدا را شاهد می گیرم اون سال بیماری برای من و همسرم و بچه هم به اندازه پیش آمد که تمام آن درآمد اضافی رو من به بیمارستان دادم اینا بحثای خشک ارتجایی نیست عزیزان اینا رو دین گفته اینا رو خدا گفته اینا رو پیغمبر گفته اینا رو اع... این علی دهده دیگه هستیگه ما به علیگن شب قدر میگیم. یا برای علی میپوشیم، اشک برای علی میریزیم، خب هر فعالیه دیگه. الحمدلله به برکت مولامون امیرالمؤمنین و مولامون امام عصر علیه السلام ما قدرت استدلال عقلیشم داریم خدا رو شکر. یاد دادن استدلال کنیم این قابل استدلاله. ما اینجا جاش نیست خسته میشید. اگر خواستید من حاضرم. همین بحث رو بحث امداد غیبی را که سنت خداست در این عالم لاقل با سه یا چهار جلسه استدلال که عقلی خدمتون بکنم که جهان منحصره به این اسباب و علل مادی نیست یه اسباب علل دیگه در کاره اگر من ارتباط به اون اسباب و علل پیدا کنم اما فعلا میخوام جنبه دینی و شرعیش رو بگم استدلال نکنم آقا علی وقتی میفرماید و من عمله لدینه الله امر دنیا یه مقدار وقتمونو برای دینمون بگذاریم همین جوری که خودشون فرمودن چند قسمت بکنیم آقا دنیا جامعه چنین باش آقا شما زمانی مؤمنی که اتفاقا در روایات دوره آخر زمان این رو داره میگه اگر لازم شد نماز تو بری زیرزمین مخفیانه بخونی حتی زن و بچهت نفهمن در اون حال المؤمن کسی کسیست که رها نکنه یعنی اگر به این شرایط برسه میخواد نماز بخونه زنش مسخرهش میکنه میخواد نماز بخونه بچش مسخرهش میکنه او دست از اعتقادش بر نداره بره زیر زمین بره پستو یواشکی نمازشم بخونه اگر به اینجام رسید این مؤمنه همونی که شیعه های امیرالمؤمنین در اوج خفقان حکومت بنی امیه کردن که امروز به دست ما رسید شما میدونید من بعضی وقتا هی من اعتراض کردم که شما چیز اینقدر جوش آوردید گفتم به خدا دست من نیست من وقتی یادم میاد اون لحظه که میخوام یه حضیلت از فضائل رو بگم خود من گاهی متوجه هم اون مقدار جوش آوردن ممکنه خلاف شعر باشه ولی دست خودم نیست تو ذهن خودم میاد که کی بودن اینا ولی وقتی چه کردن با اینا چه جوری آقا پس میبندی اینجا نشستم این مثال رو میزنم نفر نشسته نف با پنجتا چاغوی تیز به پهلوی من بزنن من آخ بگم شما میگی چرا آخ میگید؟ آقا دارن چاغو میزنن به من نمیتونم هم چیزی بگم. آقا انسان وقتی تاریخ نگاه میکنه هیچ چاغو تو قلب آدم فرومره یکیش اینو بگم اما اون ور قضیه شم ببینید چنیدید از من ابن اول حدید معتزلی غیر شیعه پدر فیر مردش از دنیا میره گو پسر بزرگم بیاد یه رازی رو با او در میام بکسارم پسر بزرگ اومد بابا جون درو در ببن کسی تو اتاق نبوشه خودت بیا جلو خیلی رازه خب حالا پدر داره از دنیا میره چی میخواد به من پسر بزرگ بگه من رفتم جلو بهسترش گو بابا جون چهل سال با مادر تو زندگی کردم جرئت نکردم بگم شیعه علی ابن عبی ترسیدم گزارش رد کنه ولی بابا من شیعه بودم حق با علیس دا گول نخاری دا. اینو یه جوری تو خانواده برسن بابا گفت مرس پسر درو وا کرد بیاد بیرون دید مادر پشت در نشسته گفت مامان پدر فوت کرد خب علالقایده یک همسر که فوت میکنه همسرش عکس عملی اونی که انتظار داشت ندید تعجب کرد مادرم شوهرت بود دلت نسوخ بغت مادر ترکید منفجر شد گفت پسرم چهل سال با تو زندگی کردم جرعت نکردم به او بگم من شیعه علی ابن عوی طالب. ترسیدم گزارش رد کنه یعنی این خفقان این سشاره حاکم بر جامعه اسلامی اما چه کردن اینها که امروز خدا میدونه ما تو مرکز وهابیت مدینه مکه تو دانشگاه شریعت مدینه اگر بحث منطق باشه بحث زور باشه خب هر دیگرش بحث منطق باشه چنان گردنمونو میکشیم سینمونو میدیم جلو با کمال قدرت بگیم بیاییم بحث کنیم ببینین حق با ماسیه با شماست در میرن از بحث چون میدونن قضیه چیه کی کرده این کارو غیر از خداعیمه علیه ماسلام این شیعه های پرپاورس قوی محکم مؤمن راسیی که خم به عبرونه می آوردن می ولو از این زیرزمین با آن زیرزمین از این دخمه با آن دخمه ولو شوهر از زن می ترسید زن از شوهر می ترسید. اما کارشون رو کردن اگر اینا مخواستن بگن آقا جب به دست بنیومیست میزنن، میکشن، میبرن چنین است چنان است. مگه میشه دو نفرم بگه علی فایده داشته باشه همین دو نفر دو نفر علی گفتن امروز شما اینجا یا علی و یا علی رو فریاد میسنید نه اینجا من تلفن داشتم ذکر یا علی رو دیشم خدا شاهده روز نوزدهم دوازده ظهر دوازده ظهر ما اینجا تلفن زنگ زد یک جوان از لس آنجلس. گفت فلانی الان وقت احیای ماست میخوام قرآن بذارم بالا سرم اما زنگ داددم دقیقه برام حرف بزنید بعد من قرآن بذارم بالام. بعدم گفت که فلانی الان اینجا دارن ذکر علی علی میگه. این تو لس آنجلس حالا اینش تو چیزی نیستیم با آ ظاهری دنیاوی میخوام بگم چی شد اینجا رسید؟ دشمن هم چه میکنه؟ میبینه منطق که نداره شیعه های بیگناه بی تقصیری که تو مسجد تو پاکستان دارن نماز میکنن مسلسل میگی ناری میبنده چون اغده جمع شده تو دلش نمیتونه کاری بکن یعنی اینا این تفکر رو در طول تاریخ خواستن به ما دلشون آقا کارتو بکن تو یه چراغ رشو چراغ الان آقای حسین هیچ چراغ روشن نشده باشه اما یه چراغ روشن بشه به اندازه روزنه هایی که هستی چراغ نور شه به جای دیگه میده شما خود تو برادر تو این ایام خواهر تو این ایام ماه رمضان و شب‌های قدر و ایام شهادت مولا بیای قرارداد رو با مولا ببند خودت رو غنی متدین بساز یک خانوادهت عوض بشه دو فامیل تحت تحصیل قرار میگیره سه محل تحت تحصیل قرار میگیره هر وقتم که لازم شد در سطح عمومی در کار تو انجام بده تو کار خود بکن پس این تفکر که آقا فعلا من یک نفر این عاملیه که ما این فکر رو بکنیم بعد میتونیم شما خودت به هر جا می‌خوای برسی برو جلو و میریسی پس یک باور این معنا که من تا به کجا میتونم برسم دو باور این معنا از جهت نظری رسیدن به این مطلب که کجا هستم نکنه متکبر بشن ای واقعی گاهی وقتا دوتا دوستیم خیلی هم دیگر هم دوست داریم صادقانه بش میگم عزیز من داری میکنی خیلی داری اشتباه میکنی خیلی افت کردی میگه تو هم بله نمیبینی من چقدر تاالی دارم نماز من روزه من عبادت من وایدی تکبر آقا ابلیت چی شد که رنده رو؟ ابلیس کم عبادت کرده بود؟ به فرموده امام صادق علیه السلام ابلیس قبل از اون صحنه امتحان خاص شش هزار سال عبادت کرده ولی وقتی تجربه و محک آزمایش به میان آمد خدا میگه ابلیس سجد کن این منعیت و غرور که در او ایجاد شده خلق من نار و خلق تا او منتین انا خیرون من ها من از او بالاترم من خیلی وقتا ما توی شبای غدر آقا من مگه گناه کردم من مگه بدم من مگه چنینم من مگه چیم این من این من این من بیچارمون میکنه افتادگی آموز اگر طالب فیضی بوالیسینا خیلی قشنگ میگه اینجا بینی و بین که انیگی و نازعونی سرفع به لطف که نگی من البینی ای خدا بین من و تو این منیت داره نزاد رست میکنه سر به لطف به خودت رف کن بردار این, این انانیت رو از میان تا یک سر مویی تو هستی است آین دکان خود پرستی گفتی بوت پندار شکستم رستم این بود که ز پندار برستم باقیست خود اینم یه بطه لذا میان به ما میگن بالاترین جا از نظر ظاهری جسمانی پیشانیه کسی رو خیلی دوست داری پیشانی شو ببوست. این بالاترین جا پیشانیه پسترین تو عالم ماده خاکه به ما گفتن پیشانی تو رو خاک نگفتن رو فرش سجده کن نگفتن روی غیر اونی که حکم عرض داره سجده کن این خاک رو بذار سرس رو رو خاک بگو سبحان ربی العلا و به حمد او عالی و بلنده و من عبد او هم لذا باور کنم من اینجا ببینید نگره شما نظره انسان در مقام نظر گاهی اون چیزایی که داره می‌بینه، گاهی اون چیزایی که نداره میبینه امیر من و شما فرمودند در مسائل مادی اونایی که از تو پایین نگاه کن که مقدار شاکر باش؟ آقا این همه تو جامعه هستن ضعیف بیچاره گرفتار مستمن باز من که در این حد پاس شاکر باشم اما فرمود در مسائل معنوی همیشه نگاه کن به اونهایی که هست و بالاتر و این چه عرضشی داره میگه اگر من نگاه کنم به اونهایی که از من بالاترن اینجا دور بر نمیدارم میگم آقا بنده که روزه گرفتم ماهی دو روزم مستحبی میگیرم آقا کسانی هستن تمام سال روزه. چی دارید میگید؟ هیچ هم نشون نمیده هیچکس کسی نمیفهم آقا من هر شب یه رو شب زندداری میکنم آقا کسانی اصلا سه ساعت دارن عشق میریزن آقا بنده تو همین تهران تو همین تهران ما یکی از دوستانمون داشت از دنیا میره زنگ زدن اصرار آقا حتما خودتون رو بریسونی ایشون اصرار داره موقع احتضار شما رو ببینه ما دو سه نفر بودیم که اصرار. شکسته پکسته اشاره یه دفتریه اینو میخوام بعد از من به دست شما بیفته دفتر رو گرفتیم چیه؟ دیدیم آدرس یه به خانوادهای های بیستر که این سر میکرده هیچ کس خبر نداشت حالا که داره میمیره دم مردن میگه من میرم اینا بیستر پرست نمونن اینا رو یه کارشون بکنید ما چی میدونیم چه خبره؟ یه حدیثیست معصوم فرمودن خداوند چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده دیشب بعد از تموم شدن جلسه اینجا با رفقا خوندم نشسته بودیم خصوصی یک شب‌های قدر رو در بین چند شب مخفی کرده تا شما چند شب رو عبادت کنید اگه میگفتن یه شب همون یه شب رو عبادت میکرده اجابت دعا رو در روزهای ساعت جمعه چون یه ساعتی از ساعت جمعه است میگن که دعا در اون ساعت ردخور نداره بعضی‌ها احتمال میدن سر ظهر بعضی ها احتمال میدن موقعی قروب و آفتابه بعضی ها احتمال میدن موقعی طولو آفتابه میگه چرا سریع نفرمود فرمود برای اینکه این روز رو ایشترش عبادت کنید لاقل چند جا رو احتمال میدی چند جا رو دعا کنید بندگان خوبش را در میان آمه مردم تا شما همه را به چشم ازمت نگاه کنید هر بیشه گمان نبرد که خالی شاید که پلن خفته باشد شیخ بحایی با اون مقام و عظمت که این همه زحمت کشیده خودش شیخ با اون قدرت خودش شیخ میگه رسیدم به یه پیندوزی پیندوز مثل واکسیای های زمان ما دیدم نشسته زمستان یخبندان سرد یک ظرف مختصری زغال آتش کنارش گذاشته این دستش رو میگه رو آتش گرم میکنه با این نشترش با این چیدش داری رس تفسار رو رسله میکنه دلم صور که نار نشستم شیخ باهایی قدرت خزایی داره گفت شیخ این مشتی‌ها که یه چیزی مثل دستاهوان هست که کفاشا دارن میکوبن چرمو یا کف کفش گو اینو برداشتم با دستم بازی کردم حالا کردم گذاشتم رو میزش با این قدرت رو داشت شیخ گفتم پیرمرد نگاهی کرد گفت چیکار کردی گفتم صداش در نیار طلا بر بفروشی مقداری وزن ادب ازش گفت نمی‌خوام آقا کرد من قدرت برگردون دیگه نداشتم. قدرت تبدیل به طلا داشتم نمیتونستم برگردونم. گفتم آقا طلا صداشو در نیار. گفتم آقا جون شما فقه نخوندی گفتم چرا؟ گفت تصرف در مال دیگری بی اذن او جایزه. گفتم نه من نمیخوام تصرف کردی برش کردم. گفتم والا نمیتونم. گفت بده من. گرفت برهش دادم گذاشت سر جاش. گفتم کلاس میذاری بی بیام پیش درس بخونم. کلاس میذاری بیان بشه چه میدونیم چه خبره به خدا قسم گاهی وقتا تو کوچه که رد میشم یه سفور رو میبینم داره جارو میکنه گاهی بایی میسه چه میدونم نکنه اینم یکی از اوناس داره من امتحان بکنه خیلی وقتا همراهان من خانواده هم اعتراض میکنن حساب آخر دیگه میگم چه میدونیم شاید خدا یکی هم سر راه ما گذاشته از این کانالم یکی گوش ما رو بکشن یه چیزی به ما یاد بدن ما این نکته دوم باور این معنا که من کیم بیچارم یکی از اسراری که خدا انبیارا به عنوان نبی انتخاب کرده در روایت امام صادق علیه السلام اینه میگه حضرت خدا به حضرت موسا گفت موسا برو بگرد تو جامعه پس هرین رو انتخاب کن در مناجات فردا که میای بیار حضرت موسی میگه رفتم گشتم گشتم گشتم به هر کی رسیدم بعد گفتم من میدونم شده از من بالاتر باشه آخری رسیدم به یک لاشه هیوان ای که بوی متعفن میداد گفتم اینو ببرم اما به ذهنم یه لحظه خطور کرد من چه میدونم اینم مخلوقی از مخلوقات خدا بوده خودم تنها رفتم گفتم خدایا خودم از همه بیشتر میدونم خدا گفت تو پیغمبر منی تو پیغمبر من نکنه خدایی نکرده چهار تا قرآن بالاشر گذاشتیم اشفیختیم از فردا دور ورداوی ما نکنه خدایی نکرده توفیق چهار رکعت نماز شب داریم به زن و بچمون یا به شوهرمون بچه‌هامون فخر فروشیم نکنه یه چهار عبادتی چهارتا دعای چهارتا عشقی تا کار خیلی آقا خبرای تو عالم کسانی هستن کارها دارن میکنن پس یک باور کنیم کجا میتونیم برسیم دو باور کنیم کجا هستیم خیلی بیچارم ضعیفم. سه باور این معنی که برخی به کجاها رسیدن ما نرسیده ایم اینم باید باور کنیم <تصفح> چون یه وقت میگم که بله ما میتونیم خیلی به مقامات بالا برسیم دو قبولم دارم که من بیچارهم، به جایی نرسیدم ولی اقا نه نیشه رسید خود معطل نکن اینم غلطه نه خیلی اقا جون میشه. این رو یه مقداری دیگه برای دهن من زیاده چون بزرگان گفتن من میگم ولی خود من معتقدم، ما از بزرگترها یاد گرفتیم شما صادقانه و خالصانه بخواید با اونجا برسید امام زمان علیه السلام کمکتون میکنه چنان انایت چیم کنه؟ امام آخه سابقیاره؟ ببینید اگر از نظر کلامی با بخویم این بحث رو بکنیم ما عدله خیلی قوی عقلی داریم برای این مطلب یه پدر یه معلم عادل آگاه با توجه و ناظر یه معلم تو کلاس نفری وقتی ببینه واقعا یه شاگردش علاقه ای داره جدیتی داره خاصی داره میشه که این معلم به این بی توجه باشه مگر این که یا غفلت داره یا جهالت داره یا عجز داره دیگه خدا امام زمان رو معلم بشریت قرار داده یا نداده اینا بحثای نظری اول اگر امام زمان علیه السلام را معلم بشریت قرار داده از خدا ناظر بر ما هست عادل هست قادر به ازن الله برای دستگیری ما هست یا نیست خب گر گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه گر گفت که از نوه سرایان امام حسین بود مشکلاتی داشت ای توسل بیدا میکرد جواب داده نمیشد یه شبید دلش خیلی شکست گریه یه مفصلی کرد به امام حسین متوسل شد که یه نرسول رسول الله هر نوکری رو به چشم مولاش نگاه میکنم هر متولی امامزاده رو به احترام امامزاده بشه خب من نوکر شما مشکلات ما حل کن شب خواب دیده آقا عبدالله علیه السلام حضرت فرمود تو میگی نوکر ببین ما قبول کردین واقعا نوکر ما هستی یا یه سفر اصباحان بودم تخت فولاد اصباحان میدونید قبر خیلی از اوتاد روزگار اونجاست خیلی مرو ماشی حسن دیگه هم هر چی گرفته از تخت فولاد اصفهان گرفته دیگه لاوتچر حالشو خوندید و میدونید یکی از بزرگان از خوبان روزگار که من مباهات میکنم با آشنای با ایشون که الانم ساکن اصفهان همین امروز ظهرم تلفنی صحبت میکردیم با هم مهمانیشون بودم به ایشون گفتم پیر مردی است. گفتم دلم میخواد به بعضی جاهای تخت پولات منو ببری بعضی خاطرات هم برام بگی از یه مال چند سال قبل این قضیه رو ایشون برای من تعریف کرد گفت که یه آقایی بود این قاری قرآن بود و قرآن خیلی قشنگ میخوان در اصفهانم رسم بوده اگر کسی فوت می‌کرد، یک متاسفانه گاهی رقابت هم صورت میگیره مثلا این صاحب متوفا پول بیشتری بده قاری بیشتر رو بیاره مثلا یه هفته سر قبره این مردش قرآن بخونه اون یکی قاری بیشتر رو بیاره تا چهلم گاهی این مسائل میشد گویا یکی از خوانی اصفهان مادرش بود کرده بود خب خانم بود و سرمایدار و خیلی هم حاکم وقت و قدرتمند و این را قویترین ترین قاری قرآن شهر رو آورد گویا جون همین کارا تو تاثیر در روز مثلا چقدر این برابر قرآن میخونی به طول میده مثلا اینقدر وقتی دو برابر شه مدت میده میای میشینی سر قبر مادرم تا چهلمش قضام من برات میارم گفت من روز اول نشستم و غذایی که ظهر برام آوردن خیلی غذای عالی بود من تا الان اینجوری نخورده بودم شام برام آوردن تر دو روز گذشت چه خوبه که دل آدم نور پیدا کنه جرقه ای بزنه یه پنجره روزانه به سوی عالم معناتش باز بشه ای خدا تو را به مظلومیت علی تو به ان شب های علی تو به ان شب همین این زمان حالای اون دل سختگانی که تو نجفن دارن عشق میزن ترا به اونایی که امشب پشت دیوار مسجد کوفه نشستن و سرشون به هستن الان خبرهای تو ترا به عشق اونا قسمت میده این دل ما رو نورانی کن این روزنه رو هم به دل ما باز کن ببینید این تکان خوردن گفت یک کمی با خودم فکر کردم بد بخ. برای مادر این خان قرآن میخونی اینجور پول میده قضا بد میده برای مادر امام زمان بکنی چی کار میکنه گفت فردا اومد گفتم من نیستم تا آخر عمرم مجانی قرآن خوندم دیگه از کسی هم پول قبول نکردم و مجانی حرف زدم گفتم تو ذهن خودم من برای مادر خان کار کنم اینجوری به من میرسه برای امام زمان کار کنم به من نمیرسه تا حالا در نماندم. تجربه‌ای که تو دل زده شد و اینکه در ما ببینیم معنا رو در ذهن خودمون ایجاد کنیم باور این مسائل بس بر... خود این باور خود این باور خود این باور در مرحله اول پس یک باور این معنا که باید به کجا برسیم دو باور این معنا که من کجا هستم من بیچارم سه باور این معنا که برخی رسیدن من نرسیدم میشه رسید میشه رسید معروض نباشم چهارم باور این معنا ارزش همینه بقیه ارزش نیست چون گاهی این رو نداریم میگیم خب حالا مثلا شیخ به هاوی به رسید ها شیخ خسنیدین خودکی به رسید اون فلانی ها خب حالا شد به ما چی این رو تو ذهن خودم ایجاد کنم مگه غیر از اینا عرضشه شما همین امروز مثلا روز شهادت از تعمیر بشین کمی فکر کنید مالک اشترم رفت اما رفت. میثرم تم... میثمتم مارم رفت صد وقاتم رفت ماویم رفت امرااسم رفت شما رو به خدا کیبورد کیبورد به میگید مالک به خدا دلم از جا کنده میشه وقتی میگید مالک ای خدا امشب ما رو مستحق یه نگاه مالک بگردان ای خدا امشب گوشه چشم تمار رو شامل حال مام بکن، ای خدا امشب یک دعای جناب امار یاسر رو شامل حال ما بگردن اینا چی بودن آقا اینا چی فهمیدم اینا به کجا رسیدن بفهمیم ارزش اینه ما میتونیم در زمان غیبت به این اینجا برسیم این چارتا رو من به عنوان بحث نظری گفتم اینو ان بحث می‌کنم بعد عملیش از کجا شروع کنیم راه عملیش چی باشه پس این تا فیلن تو بحث نظری بمانه شام غریب امیر المؤمنینه. بریم کوفه بریم نجف علی راحت شد راحت واقعا راحت چون علی اولیا منتظرش بودن انبیا منتظرش بودن فاطمه زهرا منتظرش بود برای علی که معلومه من راجب مام حسن مام حسینم چیزی نمی کن. اونا بالاتر از یه ای حرف این کسی من چیزی راجب این زمینه میخوام بگم چیزی بگم اما فکر میکنم امشب دو دسته رو در کوفه یک اون اصحاب علی شناس کوفه مثل مثلا حجر مثل اصبق ابن نباته مثل سه سع سهت ابن سوهان مثل میسن تمار مثل کمیل اینا میدونید چه انسونهایی هست من تصور میکنم با خودم اونا امشب چه حالی دارن شاید کومیل مثلا به میسم تسلیت میگه میسم به حجر دلداری میده حجر به اسبق ابن دلداری میده اسبق بن نباته به سه سوهان چون اینا میفهمن کی از دستشون گرفته شد اینا میفهمن چه خون به دل علی رفته بود یک امشب این علی شناسان روزگار چه کشیدن و چه بس هر کدومشم تو پرانتزم زمین رو بگم بنده این رو با مطالعه خدمتون میگم همه این دوستان لایق قوی علی شناس بعد از علی به شهادت رسیدن همش همه رو کشتن یعنی جامعه تحمل اینا رو نداشت دو بچه یتیمای کوفه خراب نشینان کوفه بیو زنان کوفه امشب مشکلی که اونا داشتن چی بود؟ یک اون پیرمرد نابینا اون ضعیف خراب نشین اون پیرزن زن سقیردار. خودش دلش خونه از اینکه که مولاشو از دست داده اما میبینه بچه هم سر به دیوار گذاشتن زار زار دارن گریه میکنن و عشق میریزن ما میگیم علی جون ما میتیمه مکتب تو هست اون شب دستی به سر امام بکش دیشب امیر وقتی وسیعت هاشو کرد و فرمود منو ببرید یه سنگی رو بردارید قبر خودش پیدا میشه مروم آشه خباس هم این رو در منتهل الامال هم ذکر کرده بی مدرک نمیگم میگه که آقا امام حسن و امام حسین تشبا بردن با اون مکان معین نیمه های شب تاریخ رسیدن اون سنگی رو که بهشون گفته بودن برداشتن تا برداشتن دیدن قبری پیدا شد همین که خواستن بدن مبارک علی رو ببرن تو قبر دیدن یک پرده قسمت بالا سر آمد ای پرده رو کنار زد دید چند مرد زیر بغل پیغمبر خدا رو گرفتد پیغمبر به استقبال علی اومده قسمت پایین پای قبرم دیدن یک پرده ی پیدا شد امام مجتبا پرده رو کنار زد دید چند زن زیر بغل فاطمه زهرا رو گرسته فاطمه به استقبال علی آمده که دست در دست علی رو به اتفاق هم خدمت پیغمبر برن اما برن خدمت پیغمبر بگن یا رسول الله من پعلوم مشکسته، علی علیم فرقش رو شکافتن این مردم نالایق اما اون لایقانی که در کنار علی به اون مقام رسیدن خدا تو به مقام آنها قسمت می دهیم این معرفت رو شامل حال ما هم بگردن